و علما هم به احسان اله یوم الدین در اسلامشناسی معاصر در شناخت کامل دین است ما سعی و تلاش میکنم که بعد از الله یک سلسله از درس های اسلامشناسی خدمتان تقدیم بکنم که دو درس ها فقه اولیت هاست شناخت حلال و حرام است بعضی از فقه واقعی میگن اینی مسائل است که من این خدمتان داری درسا در دی این روز آماده میکنم انشاءالله و تعالی مستقیم دادکام تقدیم میکنند موضوع اسلامشناسی کامل یا شناخت کامل دین از کجا سرچشمه میگیره؟ ما و شما میبینیم که خداوند متعال جلجالهو در قرآن عظیم الشان بر ما مسلمانان خطاب میکنه بعد از آوض بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمند خلو فی السلم کافتم و لا تطبی و خطوات الشیطان صدق الله العظیم خداوند متعال میه که یا ایها الذين امنوا این چه خطاب برای مؤمنا هست شما شماخ میبینیم که در بسیاری مسائل خطاب جهانی می یا ایها الناس بر کل مردم خطاب میشه و بعد جهه که ما شما ادعای ایمان کردیم و کلمه رو خواندیم باز اینجا مخاطب باز ها قرار میگیره و بر شانه ای که یا ایها ذین امنوا و ای کسانی که شما ادای ایمان میکنین میگین ما مسلمان هستیم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 ادخلو یعنی شما مسلمان ها اینجا وا وا جماعت میگن است که شما مسلمان ها را در نظر میگیرن یعنی شما مسلمان ها دا اسلام داخل شوید و بعضی از علمای دیگر میگنید این حال هست از کلمه سلم از خود کلمه اسلام بنار اینجا ما میتانیم دو تفسیر بکنیم دو تفسیر چی قسم بکنیم که ما در اسلام خود ما ادخلو یعنی ای شخصی که تو مسلمان هستی داخل شو در اسلام تو با تمام اعضای بدنت چشمت گوشت عقلت فکرت اندیشی دست و پای تمامی اعضای بدنتا باید مسلمان بسید یعنی ما کسایی داریم که مثلا مسلمان هست قلبن ولی چشمش مسلمان نیست چرا؟ چشمش مخالف حکم در حرکت است یا علی قرآن باشمه که نه باید چشم تا هم مسلمان بسازید اسلام یعنی چه یعنی تسلیم شدن پس چشمایت هم باید به حکم خداوند تسلیم باشه دست هم باید مسلمان باشه در کاری که حکم خدا دهو شده که نکو باید دست از اون دور بره پوت هم باید به طرف حرکت کنه وقتی که اصاب میکنید روزان ما چند قدم به طرف شر رفتیم و چند قدم به طرف خیر رفتیم هر خطویی که من میگذارم هر قدمی که من میگذارم چند قدم ازی در راه خدا بودن و چند قدم دیگه ازی به خاطر نفس امر به ما بوده چند قدم ازی به خاطر خوشی یک انسان بوده و چند قدم ازی به خاطر خوشی خداوند متعال جل جلاله جل بوده برای من قدم‌های ما هم باید قدم‌های اسلامی باشه خب ای که می‌گیم اگر تفسیر دیگه شه بگم که کلمه کافه یعنی سلم باید ما مکملن در اسلام داخل شویم اینجا باید بخشهای مکمل اسلام را باید مراحت بکنی.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 واقفم سلمان هستم گفتم خب من سوال از پیشوت بکنم اجازه میدی که سوال کن گفتم وقتی که یک نفر میگه من کمونیست هستم برو ازم کمونیست حقیقی پرسان که بگو برادر تو که کمونیست هستی آیا ممکن است که من مثلا عقیده عقیده مارکس باشم فکر اندیشم مارکسی باشه و ما به مارکسیسم ایمان داشته باشم لکن بگم نمیخوام که اقتصاد اسلامی رو تطبیق بکنم اون مارکسیست بپرسه میگه نخیر فکر اندیشان مکتب تجزیه نمیشه. به تو نمیتونه که انسان خودش بگه من مارکسیست هستم، کمونیست هستم لکن اقتصادش از اسلام میگیرم، مینرونی برامدی. یا مکمل مارکسیست شو یا اصلاً مارکسیست نیستی. اینی که خاچه تو میتونم گفتم تو خودت نه خودت با تناقض گپ میزنی که من مسلمان هستم، لکن باز اقتصادش از کجا میگیرم؟ از اقتصاد مارکسیستی میگیرم باز شده نمیتونه چرا؟ دین کامل است فکر کامل است اندیشه کامل است بنا اگر ما یک قسمت از دین بگیریم قسمت دیگه چی از دیگه جایی جویز باید جا پیوان میخوره و فکر و اندیشه پیوان ده نمیپذیره تجزیه نمیشه الاسلام اما یو خذ کلوهو او یو ترکوه کلوهو یا مکمل مسلماشو خداوند بگه یا ایوهاللزین همونو خلوف السلم کافتر یا در اسلام مکمل داخل شوید یا مکمل اسلامه تقل بکنه اما این قسم تداخل بین اعتقادات و افکار در عقیده و در دیل مقدس اسلام و در سایر عقاید و افکار نمی پسیدن. اینا رو خاطر وقتی انسانو گفت که ادخلوا یعنی در اسلام بعضی از ابو هریره رضی الله تعالی وقتی روایت میکنه که عن ابي هريره الله عنه قال قال رسول الله الله عليه وسلم پیغمبر سلام چی گفت؟ عزادای برابر سلام کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که الایمان و ال بدعن و ایمان 70 چند بخش داره پس برای ما معرفی میکنند دین چی. الایمانو بدون مصیبه اونا شاهدهن ایمان هفتاد تا چرا؟ فااولها قول لا اله الا الله بهترین شاخيش و اولترین شاخ ایمان چی که تو داخل ایمان میشی گفتن لا اله الا الله است و ابناها اماته الاضع عن الطريق و آخری و قرترین شاخ ایمان چی دور کردن هر چیز مصیبت برف از روی راه پاک میکنی یک چیز خاص خاشاک داره افتاده رو پاک میکنی سرکه جور میکنی پاکش میکنی یه چیز موزر را از راه مردم دور میکنه اد ت او و وال حییا اوشاابت من ایمان و حیم یک بخشی از ایمان است بهن اینجا آیت پرالمه که پس شما در هفتاد و دو بخش ایمان اینجا گفت بدون بدون آن بد ما میگه بین سه تان یعنی هفتاد و چند بخش است و لمای دیگه میگن که وقتی کلمه اکتات در, در اسلام استعمال میشن به معنی بسیار زیاد. یعنی ایمان بخش های بسیار زیاد داره خدا در یک بخش دو بخش مسروف نگو که والا من اینی بخش دین دی نگرفتم من والا مسلمان شدم آیه قرآن میگه نخ خیر ادخلو فسلم کافتن تو باید اگر میخوای که مسلمان مکمل شوی در بخش فردی ایمان بالا من ایمان چی حکم میکنه و با بخش اجتماعی ایمان در جامعه وقتی که من زندگی میکنم اسلام است که رابطه تو رو با برادرت با پدرت با مادرت با فامیلت با همسایت با استاد با همکارت با مردم با تمام که سر جامه است مثلا نماز جا... نماز ببین با شما در نماز جماعت در حضرت خرد خود میریم در حضرت خرد ما 20 نفر نماز بنام می خوندن به نام روزانه ما را با اینمی دو که من زندگی میکنم ارتباط مي وقتی که روز جمعه میشه باز ميريم در حضرت كالان خريا ميريم ايج با که مردمي كه میخ... در ميدوناگي زندگي ميكنن امراي زن ما شناخت پیدا بكو او صاحب شما را بعدا نماز جمعهديد و همراه شما در نماز جمعه ملاقات کردم. باز اینجا حلقه را كوان بره بالاخره باز وقتی که از نگاه حکم شرعی باید ما ایدگاه داشته باشیم که کل مردم یک شر در ایدگاه جمع شدن تا در ایدگاه باید دایره اجتماعی اسلام کلانتر شود و وسط مولایت و وسط کشور شد و وسط مملکت شد باز ما هشت داریم حجی است فلسفه حجه وقتی که ماش رو با میخايم ارتباد مسلمانان جهان است که تو كل دنیا را مسلمان‌ها به اروپا و آمریکا و آسیا و افریقا و کل از با هم یک جای میشن و هم و با اینجا میشینن حل مشکلات میکنن حل مشکل اقتصادی میكنن اول ما تا حجه همه برو شکل سیستم اصلیش که اسلام از ازو تقاضا داره یا نماز جماعت مثلا بسیاری کسا که جماعت درست نمیخوان فقط مثلا موعظه ورميشو است نماز خود ما میخونن وقتی که سلام داد پس میرن در خانه فت نماز جماعت بر ازین است نماز جماعت برازی است که از صحت یکی دیگر از مشکلات یکی دیگر از غم و درد یکی دیگر ازی باید باخبر شیم این از نظام اجتماعی اسلام که باید ما در نظام در نظام اقتصادی اسلام باید ما اقتصاد اسلامی رو در نظر میگیرم یعنی که میگم مثلا که یک نفر که فقرمش سلامه که او کسی که مثلا شو خواب میکنه و سیر خواب میکنه و همساییش گرسنه است این جا باعث استیل مقادس اسلامه که اینجا برگمرد ایمان ازی قبول نمیشه. مسلمان نیست کی مسلمان نیست من با و جارو خودش وقتی که از پرسان که خب است امسای تو چهل خانه چفت چهل چهل خانه پشت سرت و اگر در یک تعمیر زندگی میکنی که منزل است منزل بالا و منزل پایین تو میشه باید از حالت کل از با خبر باشی در نظام سیاسی اسلام وقتی که میبینیم اسلام باید یعنی انسان مسلمان باید وقتی که مسلمان است باید کوشش بکنه که در سیاست اسلام باید اونجا طرف دارزی باشه که حکم خدا باشه افتاد فیصد شست افتاد فیصد دین مقدس اسلام احکام اجتماعی است. خب وقتی که نظام غیر اسلامی بود باز زکات از بین میره باز حدود از بین میره باز روابط اجتماعی اسلام از بین میره اسلام باز یک چیزی بسیار کوچکی میشه که میگه برو در مزید رمیدی مسلمان هستی؟ از مسلمن که برامدی؟ از دروازی مزید که برامدی؟ باز مسلمان نیستی، در ترق مسلمان نیستی در مسلمان نیستی باز نظام غیر اسلامی توی قسم مگرم اما خدا که با امرای ما همیشه هست وقتی که انسان مسلمان باید در مکتب هم مسلمان باشه معلمی که برای شاگرد خود درس میده باید به با اساس فکر ایمانی خود مسئولیت خود در مقابل معصل و شاگرد خود در نظر داشته باشه این است که مثلا بعض ما با میشیم میشکس حتی موبایلمون باید اسلامی باشه که وقتی که در بازی داخل میشیم باید گلوش کنیم دیگه اینجا اینجا خودمون که درس دین بخوریم حداقل ما کار داره نشیم این باید کل شما اسلامی بسازید خب خب این حال وقتی که ما اسلام افاهمی این جمعیه که اسلام کامل چه خسر بشناسیم وقتی که ما یک انسان کامله بشناسیم. انسان کامل کدام انسان است انسان است که روح داشته باشه جسد داشته باشه و عقل داشته باشه روح اگر یک نفر روح نداشت مجرد که برامدی از وظیفه موتر زدت انجینیر مردم باز نمیگه انجینر سر خلاص شدی مرده کجاست میت کجاست جسد کجا بردن این نام زندگی که نهادن مردها را جای حیات نامتو میت نهاده نیست وقتی که روحش رفت باز نمیگه کجاست رئیسه مرده کجاست جسد کجاست از این خاطر انسان وقتی کامل میشه که روح داشته باشه اگر روح نداشت مرده است انسان وقت کامل میشه که جسد داشته باشه اگر یک نفر خدای ناخستن نابینا شد دیگه برو داره سی نابینایان درست بخون اگر یک پایت نبود باز وزارت به وزارت معلولین شو ادا معلولین میشی اینا به شکل کامل گفتن نمیشه ولی این فلانی از اسکری محافظ چرا محافظ میگه بیجه چرا پای داره مشکل داره و سیوم قسمش انسان کامل کسیست که عقل داشته باشه یعنی عقل است که اگر عقل انسان نبود با زور که این انسان از انسان ناقص چی میگن اونه؟ دیوانه قرارش نگی خیرسود دیوان است اصابش خراب است اسلام های نگه پس پیغمبر سلام مثل که پیشهر حدیث شریف خانده شد پیغمبر سلامه که دین مقدس اسلام, اسلام از سی بچه اصاسی گرفته شده که روح دین ایمان است. انتومن بالله و ملاکتی و كتبه و رسله و یوم الاخره و القدر خیر و شر من الله تعالی ایمان داشتن به این اساسات اعتقادی این بخش روحی یا تیوریه که دین است. اسلام عمل است بخش پرکتیک است با زبان کلمه بخونیم قلب تو رو تصدیق بکنم نماز بخونیم روزه بگیری حج بیری اگه تواهی نایی و بقیه احکام عملی اسلام و احسان چی هست احسان مثل که عقل در بین روح جسد انسان کار میکنه احسان ارتباط دادر از بین ایمان و بین اسلام یعنی وقتی که نماز میخانی جسدت استاد شدید الله اکبر گفتی باید روحت هم آزر باشه که در مقابل خدای عزیز جل قرار دارم احسان چیز؟ انت عبود ربکه که انک ترا او تو عبادت خداونده خدا تو عبادت کنیم مثل که خدا رو میبینی فا این لم تکن تراهو اگر تو مشکل داری این مشکل توست توست که خدا رو نبینی فا این رو یراک او تو رو میبینه ولی مشکل وقتی که دیدن رو دیده سقرات و عرستو تا امروز رو میگن هم ها بودن وقتی که لوی پاستور آمد در قرن بیس کرد، کشکر میکروسکوپ وقتی که ساخته شد میکروب کرد، بازی فامید گفت که نه یک تعداد مخلوقات دیگه ایست که شاید تعدادش در هر انسان شاید در وجود تو به میلیون ها ویروس باشد میلیون ها میکروب باشد زیر ناخونای افلاتون کلش چرک زده بود؟ از عالم بالا گپ میزد، از عالم مثل گپ میزد. میکروب مشناخته افلاتون؟ مشناخت. پس مشکل در میکروب بود یا مشکل در افلاتون. اگر <تصفيق> افلاتور خودش توانای نداشت ولی در قرن 20 لوی پاستور آمد و میکروب کشف کرد. پس بس انواع بسیاری مخلوقات عادی است که فایل سفاف را شناختن فیلسوف وقتی سفاف از, از افلاتون گپ بزنی و سطقرات گپ بزنی، بسیار دارن وسیدارند. که بسیار موجودات کوچکی که موجود بودن نمیفهمیدن پس مشکل داشت انسان فیلسوف امروز یک طفل خرد موضوع هم میخواست یا نمیخواست بدن امروز یک طفل خرد موضوع از افلاطون که زیاد میفهمه یا کم میفهمه زیاد میفهمه اگر میاد ریل بیاری افلاطون از قبر بخیزانی که از دور رل بیایه میگه لالک دیو مات بگرس اما یک طفل خرد موضوع قرار میست میگه برو سر کو بالا میشی ما چون افلاطون نهشناه موباره یاد نداشت پس در اینترنت ا اافلاونم بر از از قبر به تزانی اینترنت کار من میتونه ولی امروز روز کتفک خوررد و موط گفت که بششه وقت باید اینترنت چال ها رو میکنن کارم میکنم به نه مشکل مشکلی خب، و این لم تکن تا راه اگر تو خدار رو داره مید و این پس اون تو رو می انسان مسلمان در 24 ساعته زندگی خود مراقب حقیقی خود ذات خدای از دوجلله قرار میده. اگر ما ایمان و اسلام احسان حقیقا سر خط تدبیر بکنیم باز این چی میشد باز این چه ضرورت نیست که ما شما باید سرانوال داشته باشیم باید پلیس داشته باشیم باید محكمه داشته باشیم شاید اگه داستان باشیم بسیار یک محكمه بر کل کشور چرا به خاطر از اینکه معیار جنایت بسیار کم میشن وقتی که انسان فهمید که خدا عمرم مراقبت میکنه اگر ما یک روپیه تراهی خورم پس اینجوری در حقیقت خدا شاهد است و حاضر و ناظر است و عمر مراقبت میکنه و مرا جزا میتن. پس سو از خدای از جزای خداوندی که انسان بترسه معیاره جرم جنایت کم میشه چرا چرا زیاد شده میره به من اندازه که انسان فاصله از خدا بگیره فاصله از دین بگیره فاصله از ایمان بگیره به من اندازه معیار جنایت زیاد میشه و هیچ وقت امیدوار از این نباشیم در کشوری که بی دین نیست اونجا بجونایت نباشه اونجا هر روز جنایت زیاد شده میره حتی جنایت ها مشروعیت پیدا میکنن امروز مثلا در قوشه کچ از نگاه اسلامی کلی یک نفرش دندان ها یک نفر شکستوندن یک نفر خفف کرده یک نفر کاش ده دیوال زدن جنایت است لکن در جایی که اسلام وجود نداره قانون خدا وجود نداره اونجا کلی نفر ده دیوال دیوال میزنن و ده هزار نفر برش چک چک میکنن و این بسیار افتخار رو میدانه پس جنایت در جایی که ایمان نیست مشروعیت پیدا میکنن قانونی میشه عمر که مثلا در خوشی یک نفر در دیوال دیوال, دیوال, دیوال کلیش میزنه قانونی میزنه غیر قانونی قانونی کارونی میذاره چون قانون قانون خدا ریز قانونیتی است قانون جنگل است وقتی قانون خدا نبود انسان به چه تبدیل میچه به تر دل میشه اکت و دارند دهام میگه بدر مرا تابین نکو ای کاری که تو انسان میکنی منم میکنم این کاری که تو میکنی منم میکنم خخ این دیر دین مقدس اسلام وقتی که میباز کامل شناختی باز این جنبه که خخ دین اسلام کدام رابطه ها را تظیم میکنه پس سه رابطه باید انسان داشته باشه رابطه انسان با خود انسان اول باید رابطه با خودت درست جواب دین رابطه خودت با خودت محکم میکنه رابطه تا با خدایت محکم میکنه و رابطت با مردم با جامعه خب رابطه انسان با خداوند احترامن به خداوند متعال جل, جل, جل اول از رابطه انسان با خداوند متعال جل, جل. امسان وقتی که رابطه خدا میخواد با خداوند محکم بکنه چه قسم بیتونی رابطه در با خداوند محکم بکنی؟ در شناخت خدا هست که باید اول ما خداوند بشناسیم چه قسم خدا را بشناسیم؟ بسیاری کسا هستند که خدا را مشابه با مخلوق می سازن مثلا ببینید دستوری اقلاص خداوند مطال جل جل و که الله سمد خداوند بینیاج است و ما هر روز میخوانیم، خلوه الله و عهد الله در زبانت حمد گویا در دلت پیدا سنم عیب باطن کافر و ظاهر مسلمانی کی سود؟ در زبانت هم نگی یگانه که رو ببینی هم تصمیح انداخته میره باز یه خب یک فکایی بردان بگویم من یک فکایی بردان بگویم ای این در زبانت هم گویه در دست تصمیح است یا مثلا پشت تصمیح است تلویزیون بستند چی خوب خواندن است سبحان الله این خب در زبانت هم یا در دلت پیدا سنن عیب باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی چی فایده میکنه؟ کنن؟ این خسیف وقتی که ما می کنید الله و الله سمد خداوند صمد است صمدیت خداوند یعنی چی؟ یعنی بینیاز است امروز ما حتی در بین مسلمان این مشکل احساس میکنیم. مثلا ما شما می بینیم که یک پاچه هست یک رایسی جمهور هست یک رهبر هست من میخوایم پیش از پاچه ها مگه سر پیش پاشا که میری اول برو پیش دفترش از بادیگاردش باید اجازه بگیری از رئیس دفترش اجازه بگیری از سکرترش اجازه بگیری باز پیش پاشا بری اگر از طریق وزیرش از طریق رئیس دفترش از طریق سکرترش از طریق از طریق یار واسطه‌نسازی خود به پاشا نزدیک نسازی قریب از خود نسازی نمیتونی شده میری پیش می خوای در میگم چی میگی واسه من گرفتی اجازه گرفتی؟ نمیتید وقت اینال وقتی که خدا قریب میتادی به پاچاک ما بروم که پاچاک گپ بزنم باید از طریق کی بریم از طریق وزیرش بریم از طریق سکرترش بریم از طریق رئیس دفتر بریم از طریق بادیگار بری اینال کسی که خدا را نشناخته خدا را مثل دیگه پاچاها فکر میکنه میگه والا من روی سیاه هستم شرمنده هستم بیچار هستم غریب هستم مشرکی نمید یا پا میگفتن تا که من از طریق واسطه پیش فلانی نفر میرم که او رویدار است. رویدار چی مانا؟ یعنی وزیر خداست، یعنی سکرتر خداست، یعنی رئیس دفتر خداست، یعنی بادیگارد خداست خدا خب میگه الله سمد خداوند بینیاز است. پس به این که تو جور کردی این ریش که تو جور کردی به خداوند نیاز ندارد. خداوند از سألک عبادی انی وقتی که بنده های از ما پرسان بکنن درباری ما پرسان بکنن فا قریب ما بندی خود بسیار نزدیک استم. وقتی که ببنده خود خداوند با من نزدیک است از ولی خداوند بهش برانی میرم چرا مگیم ولی این مثل مادر وارا مهربان است خداوند از هفتاد مادر یعنی از میلیارد ها مادر کدام مهربانی خداوند زیادتر است آیا بین خود و بین مادر کدام واسطه میبرین؟ بهش مادر کدام مشکل داشته باشی. میرے زنان صیرا میرے تو بیاد خالہ جان کہ میں روسیا و چرمندا دستم امی مادر ما برش واسطہ رو. هیچ کوئی کار یہ کرے یک انسان عاقل نمی‌کنه پس خداوند مهربانیش تو میگی بسم الله الرحمن الرحیم پس وقتی که خداوند رحمان و رحیم است رحمان و رحیم بودن خداوند چی معنی یعنی که از مادر و از پدر و از فامیل و از همه چیز کردہ و من مہربان تر است و از بادیگارد و از همه چیز خداوند الله الصمد بے نیاز است از این خاطر ما مستقیما نسب شو 12 رج شو دست خواب می خیزم نام به دروازه مولوی صاحب تقدا که مولوی صاحب سلام علیکم ما و را آمدیم یک گناه کردیم 12 بشو می خوایم توبه این در در در است که باید پیشه پاپ بری و بازو پاپ گناهی ترا که مطرح کنه که خدا در اسلام قسمی نیست بعد اول خدا را بشناسیم 12 بشو به خیز و وضو کن خود دروازه را بسته کن به خداوند بییاز بگو خداوند میگه که اذا سالک عبادی یعنی اذا سالک عبادی یعنی فانی قریبه به بنده خود نزدیک هستم علما بسیار شاید تو بخشه شا و مسئولیت سری وقت‌ها داستان میگه مازی خنده میکنه من گفتم شاید تو وقت شا و که شما به کل متولد جان اطرافم او را استاد ما بیچاره هنوز در پلیس راه بعد وقت بسیار وقتام میشه. مسئولیت کسی زیاتر میفهم مسئولیت زیاتر است تو که عالم هستی ها تنها که ملامت نیستی وقتی که عالم هستی مسئولیت تو نسبت به مسئولیت کل مردم بیشتر است زیاتر است چرا چرا وقتی که تو میفهمی اگر بینی که نابینا و چا هست اگر خاموش بنشینی گناه هست تو میفهمی که لطفکی می که فیلم این دیرا میکنه ایوادی که بگویشی قسم تو کو الف و الافعان از افغانستان به سایخ داشت تو کاری قسم میکنن این از کجا یاد گرفتن مسلمان خودی قسم دعا میکنن این از مش بوتها یاد گرفتن خب این لطفک صبا که دیگه صبا دیگه صبا اون دو و تو خودت چوب گرفتی بابا مرد به عقیده رو تشریح نمیکنی اگر خاموش بنشینی گناه هست یکی دال است برادر عزیز. یکی مدل انسان بی‌سواد اگر گناه می کنه ایدول است گمراه از خودش گمراه میشه خودش ملامت هست اما انسان باسواد انسان عالم انسان دانشمند انسان فامیده انسان دوازه پاس وقتی که گناه می بازی مدل گفته میشن بازی یک گمراه کننده هست خودش هم گمراه میشه و دیگر ها را هم گمراه میکنه خخ ارتباط دیگه ما وقتی که ما با خداوند ارتباط خدا قایم میکنیم با تقوی ارتباط با خداوند قایم میشه و اشناب از گناه ها سهونش با شناخت حقوق خداوند باید ما حق خدا را بالای خود بفهمیم که ما در مقابل خداوند چی مسئولیت دارم من ایچی مسلمان اینجا ارتباط ما با خداوند زیاد میشه خب دوم قسمه گفتیم که ارتباط انسان با خود انسان در اسلام برادرای محترم اول خودسازی است باز جامعه اصازی ما مشکل اساسی ما هایی است که ما خودا نساختیم وقتی که خود نساختیم ما اسلام بر دیگران تمثیل درست کرده نمیتانیم یک نفر ببینی بسیار دیندار است لکن رابطی از این دیندار با او برادر برادرش بسیار زشت است چون وقتی که این نماز میخوانم و نفر خانده میره میره میره اونجا نان تیار است پیغمست و که وقتی که نان تیار شد لا سلاته به حضرت تام وقتی که حضرت تام آمد باز این چه باید نماز نیزد که تو نفل خونده بری این نفل خانده, ای خانده میرم، و او بگاه بره نان یخ شد نه تو باش میگی رو کارد یک پانزار رو نفل دیگه ما مانده میره خلاص کنم اسلام رو نفل میدن خاطر رابطش خاطر در بین خانه چیست؟ خراب است ما شما وقتی وقتت میخواد پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین خانه خود بوتای خود خودش میدوخت. تکمش کش کنده میشد خودش میدوخت. لباس رو کنده میشد خودش میدوخت. بسیاری وقت خانه را جارو می کرد. ما اسلام بسیاری وقتا وقتو نفهمیدیم. وقتی که خودمون نفهمیدیم درست تمثیل نکردیم. وقتی که برای یک مرد مسلمان بوی که در خانه داخل میشی، خانمت هست و خواهر هست و مادرت است السلام علیکم بگو. آلما خط پایاشونام مارش کنم یه یعنی روز یه کسی را گفتم میگم خیی استاد بخیزم پایای خونه میکونم مارش کنم گفتم نه يصير اسلام خوردن نمیگه نا پایایش مارش کن و نه تحقیرش کن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و بر حق صحابی مبارک گفت که وقتی که دا داخل خانه میشیدی سلام بده و خاطر چی به خاطر که سلام برکت است برای تو و برای اعضای فامیلت اگه کسی که داخل هست خواهرت باشه مادرت باشه خانمت باشه برش سلام بده این حال وقتی که ما اسلام درست نفهمیدیم خود را نساختیم از این خاطر در بین فامیل انسان متدین وقتی که گک میزنن چون ما خود را نساختیم دیگر به اساس نساختن خود ما یک انسان است مثلا ببینید میوه دو قسم خراب میشه میوه دو قسم خراب میشه و انسان مسلمان مثل سیب وارس میوه وارس این هم دو قسم خراب میشه میوه یا از داخل میزنه میزنشه بیرون سل میکنید سیبه بسیار نازنین و خوبشه است وقتی که میرید خانه که توتش میکنی گنده از داخل گنده شده <تصفح> ویا که از بیرون گنده شده کرم خورده شد انسان مسلمان هم اینه قسم در قسم خراب میشن یا از داخل خراب میشن وقتی که به نماز جماعت آمدی شیطان مثل اینه قسم که در سیب چیهش؟ کرمک است آمد این کرم این و از داخل خراب کرد شیطان مثل کرمک داخلت خرابت میکنه. برایت میگه اوه تو که به جمعه تو بسیار خوب آدم استی تو که نماز خواندی از دگاه که تو بسیار آلیتر استی تو که مثلا در تحصیلات مثلا در امتیار نتایج پانتون در پانزه بسیار لکس کامیاب شدی تو نسبت به دگاه بسیار برطریت داری اوه، سعی که تو تا چی خوب پانزه کامیاب شدی او دیگر سکت در پانزه زنیف کامیاب شدن یا چانس داشت یا نه کامیاب نشد تو که مثلا روزه گرفتی و فلانی نگرفت تو همه ایت روزه شما خاندی نسبت به اون دیگه کرد تو خوبتر است اینجا شیطان انسان از داخل چی میکنه کرمی میکنش وقتی که در دا داخلت کرم پیدا شد گندش بده. خوب چه روزایو سایه جو بسیار خوب زیبا هست خوب لنگی والا بسیار خوب دارم خوب ریشم خوبش از خوب پتوگکم جورا خوب فلانیس فلانی هست اینجا ای رعاج میگن چی میگن عاجب از خود راضی بودن است این رعاج خود انسان چی هست اجبار می علم اگر در سر زند ماری شود باز اینج درسی از تعلیم از علم از نماز از چی میگرده مار میگرده ای واسه فایده ضرر و زیان می پیدا میکنه علم اگر در دل زنط یاری شود خوب خدا اگر من اینجا کامیاب شدم شکرت از خدای من، ایشا بود، لاقین توفیق تو بود. خدا شکر که من را توفیق دادی که فلانی نفر اگر نخوان شاید او از نکرد بهترتر باشه. خدا میدانه که نماز منم از قبول شد یا نشد. خدا میدانه که عبادت من را خدا قبول میکنه یا از خاطر انسان قلب جربا این چی میباشه؟ خوف و رجا میباشند. میترسند از عدالت خداوند و امید از بر رحمت خداوند. حضرت عمر رضی الله میگفت که اگر در روز قیامت صدا شود اگر در روز قیامت صدا شود ازت و مردلتالوه چی میگه؟ اگر در روز قیامت صدا شود که کل مردم جنتیست مگر یک نفر میگم من میترسم که اون یک نفر من هم باشد ذکر ازت و و اگر در روز قیامت صدا شود که کل مردم دوزخیست مگر یک نفر جرنتیست میگم من امید میکنم امو جرنتی موشون یعنی خوف ترس از خداوند و امید بر رحمت خداوند جل جلال جلال داشته اینجاست که انسان مسلمان خودسازی میکنن وقتی که انسان خودسازی میکنن احترام باید اول خود انسان بر خود انسان احترام بکنه و من لا یتق یشتمی یک شاعر جاهلی و رو حکیم میگن از زهیر ابن نبیسلما میگن این شاعر جاهلی بود دستت جا. لكن حک داشت بعد شاعر داشت او میگه و من لایت یتق الشتم یشتمی کسی که زبان خود از نام دادن و قایمه نمی حتما خودش دشنام میخورن اگر ده دفعه اولادت دشنام دادی 11 ام دفعه چی میشه اولادت خودت دشنام میگیرن یک مادر پدر که دشتنام دادن میرن یکی دیگه خودن باز که بیری اولاداش در خود یکی دیگه خودا پدر نالت میگن وقتی که پدرش میگن ای به پدرتان نالت ای به مادرتان نالت ای فلانی تا وقتی که گفت دیگه رو ساید میکنی گوش میگیری که دم خوانم اولادش وقتی که جنگ داره خواه به پدر خود این بر پدرت نولد پدر بر قور خم میگه این بر پدرت نولد چرا او همه الا یتق الشتم کسی که از خودش احترام خود نکرد زبان خود از دشنام و نکرد وقتی که استاد برای شاگرد خود 10 دفعه دعوا زد تا فیوزمون شاگردش احترام یک دشنام میتشه از خاطر انسان باید وقتی که بابطی خوده با خود درست بسازه یعنی خودش کاری نکنه که سبب به شد و عزق پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که خداوند رحم کنه بالای شخصی که مردم از غیبت خود بقایه میکنه یعنی کار نمیکنه که مردم غیبت شد بکنن چرا غیبت از کجا پیدا میشن؟ غیبت از چی پیدا میشن؟ غیبت از بدبینی پیدا میشن اگر تو کار بد نکنی که مردم ترا بد نبینن چرا تو را بکنن؟ به نه از غیبت انسان باید چی کنه؟ خودداری بکنن در تنهایی از خود شرم داشتن انسان وقتی که رابطه خود با خود محکم میکنه حتی شخصیت انسان وقتی که عالی شد شخصیت بلنگ که پیدا کرد وقتی که شخصیت عالی داشتی خودت از خود میشه از این خاطر ایره باز در قرآن از این چی گفتن؟ یا ای نفس لوامه گفتن نفس لوامه چی است؟ نفس لوامه اوست که اگر انسان مرتقب به گناه میشه خود نفس انسان انسان چی میکنه؟ ملامات میکنن. خلاص توی کار خراب کردی چطوری کار کردی؟ مثلا وقتی که سینما رفتم، پس آن متاثر میشه که. ولی دستورات ما وقت مازایی کردیم. چی فایده داشتی؟ نه سال کردیم. چه روز ما خودتی کردیم؟ چه یکبار ای چه؟ پس خودش خودش معلومات. ولی ما امروز روز ما کلش تیر کلم ناقی از تا و شام چی دستورات داشت؟ لی. وقتی هدف نداشتم چیکار خوب میشه که؟ ولی ما کل روزم این یک میمی دوماییم. مثلا ما رخصت دیداشتم. دبستانم در هم درس نبود در مقطع وام نبود در رخصت بودم که تمام روز من صبح تا به شام تیر کردم هیچ دستاوردی ندارم خودش نفس از داخل ملامتش میکنه از خاطر باز بر خود تقسیم اوقات جور میکنه که من از رخصتی ها چی استفاده بکنم بیا در درس تفسیر اشراقو بیا تقسیم اوقات در کتابخانه بر خود جور کو بیا مثلا مطالعه بر خود جور کو بیا فلانی کتاب ها را مطالعه کو بیا فلانی سی ها را ببینی اگر انسان بتواند روزانه دو سه سی دی اسلامی را ببینه در دو بابات عالم از پیش جور میشن اصحاب کلام که قلمان روشت داشتن که مثلا کتاب بود و مکتب بودستن میرفتن در صحبتهای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجیشن از اونجا علم درس یاد میگرفتن خوه قسم سیومش این ارتباط است با جامعه اسلام انسان رابطه میده با خدا با خود انسان و قسم سیومش با جامعه با جامعه چه قسم انسان باید با اعضای فامیل خود ارتباطی بسیار مستحکم داشته باشد. وقتی که نفل سواب داره رضایت پدر و مادر در بساری آیات قرآن اگر شما مطالب کنید، قرآن می که خداوند مطالبه که شکر من را بجای و شکر مادر و پدر را با شکر خود یک جایی ذکر کرده. که اگر تو تشکری از مادر و پدرت بکنی در حقیقت شکر خدا را انجام دادی پدر اگر تو نمی بودی مدرسه نمی خانم. پدر اگر من به بیصبیا رسیدیم از خیرات توست پدر از خاطر تو است که من بسیاری وقتا انسان در آخر الزمان است انسان مبتلا می شود به پدر که احیانا خدا ناخواست ظالم میباشد احیانا کم هم فکر میباشد احیانا حق انسان را می خورد احیانا بسیاری مسائل فکرش نمی رسن. پس انسان مسلمان ای نمیره چی فکر کرده؟ یک نفر امتحان فکر کرده باز هم وقت بطلح ما جنا حصل باز بر پدر مادر خود سر تسلیمی چی میکنه پایین میکنه انسان مسلمان ببینیم پیش پیغمبر سلام یک نفر و مرد دید که پیغمبر سلسلم نواسعی خدا عزت امام حسن واسعی نه بوسر میکنه گفت یا رسول خدا یا در سر زانویت میشانی و یا را بوسر میکنی و یا را احترام میکنی مده تا طفل دارم تا حال یک شماش نکردین گفت من چی کنم با کسی که از قلب از رحمت خداوند گرفته شده باشه تو رحمت نداری؟ بسیاری پدرها وقتی که در دا میخوانه داخل شد مثل که فرعون یا اسرائیل شد عادل خلا بچه 50 50 میگرودن بچه جوانش عاده خوب که باهات هم روش خود داشته باشن بچه خود مثل دوست خود فکر بکن و کاتا زون مشورا بکن. تصویر دعو بزن، او را دعو بزن. وقتی که دو داخل میشه یک دفعه سرگونی دو میخوانم توش سکوت و سوپرچه از دو دروازه میگرودن او از دو او طرف اون طرف میگرودن فرعون هم هست. پدر پدرها خود بین که در خانه خود فرعون ساخته. پدر مسلمان باید اخلاق پایگان رو در, در بین خانه خود مراحت بکنه با فامیل خود با اولاد خود مثل دوست زندگی د پیش عزت و دل لطالانهو عزت و دل لطالانهو یک طفل نوازش میداد یک کسر را میخواست والی این والی که خواست گفت برادر تو را که والی فلانی منطقه فلانی ولعت بری دید که عزت و مرد سر خرار که طفلک سرش دار گفت والا یا امیر المؤمن تو چقدر طفل نوازش داری ممشم چند تا طفل دارم ایچ خش انها مگر نواز بود اهلا از تو مرامو ام فرما نشی از زیر بزید چلیفو کشید دو فر بر چرا تو والی شدی ما تو که سر اولادای خود رحم و شفقت نداری سر ملت چی رفت تو تو تو رحمت ندید از خاطر منفقه شد برو برو برو ازم یک کلمه کافیت فهمیده شد که تو رحمت در قلبت نیست خاطر انسان مسلمان باید پدر و مادر و پدر کلان اینا باید بسیار شفقت داشته باشن اتا اگر اولاد خود به نماز دعوت میکنن باید به اخلاق او رو دعوت بگنن که طفلش خوش شد و نماز بخونن بعضی پدرها اصلا زور سر اولاد خود نماز میخونن روزی که پدرش میمانی رفته باشه یک طفلش به نماز نمیخونن میگه شو کنم روز از نماز بیغم است اما پدر پدر, پدر پدر پدر مسلمان اولاد خود به قناعت بعضی خانمه ها را مریدیم که شوارش خوب مولوی و فامیده خود سر چادر کلان میبوشن یک روز میشه گفت شوارم نمیره داری گفت نه نه او ده گفت دخاره از شما داری سی او سپر چادر را گفت او سپر بخیر دایره دائره که ما برخصم چرا؟ خاطر ازی که از, از ترس از او چادر استار از سا ازونی پوشید پس ما باید بر خانم های خود بفهمونیم که از خواهر عزیز اجارهک پوشیدنه تو به خاطر افت توست به خاطر پاکی توست به خاطر تکبر و استبداد نباشه که اگر اگر اگر ای باشه او را عمل بکنه اگر نباشه نکنه بعضی بعضی حتی ما وکیلتا رو میگم. یک ذره کهش شوراش بسیار دیندار است قسم می کرد گفت تو ما بازی داده میشین خوب چادر کلان میپوشیم چادرک گاشم در بین دسقابلو بس در میخانه کمی در آمدن با چادر گاشم میفرتم من خود قری جانو خدا خل نمیشه بناله باید انسان وره قناعت بده نه از طریق زورتی دی یعنی چادر کلان پوشیدن باید به خاطر مرو پوشی اگر نه پوشیدین میکنم باید لباس اونی باید وره قناعت بده که چادر کلاف ستر کردن لباس خوب پوشیدن این در حقیقت بر خودت فایده میکنه خودت ان در جنت میری خودت عزت پیدا میکنی من اگه خانه بودم چند نفرم تو جنجال داشتن که پیران دراز بوی جانم پوشانم زنا چند نفر یک گروپ شده یک نفر خوب و حال ما بود و یک تلا بود بالاخره من رفتم در بین از از خود ما بود وقتی شروع کردن این ما گفتن که توجه تک سر ما خدا فرهم کرده کردیم ایک نمی پوشیم خوب دا خدا میگیریم خوب چادر گاش پوشیم خب بالاخره من گفتم برش از این است من من وقتی که است میکنم شما هستم است ی زنها از موی کشال هستند یک تیرا که که از پستان کشال هستند هستن؟ گفت ای که از هستن ای هستن که مردای نامحرم دیدن و که از هستن هستن که که میته ایوارش میشه و ای خدا جور میکنن که تا میمونه حذای بدنش معلوم میشه. ازی خواهد داشت روز قیامت انترو دبیر چند دکاش از آن. الله کشمت تو بکاشید. چقدر آن را چور کرد. نوته بر ما خیلی نگفته بود. این ما باید اسلام به شکل درستش بر مردم بفهمانیم تا کوشیش شوند. بسیاری پس خودش بسیار خوب دیندار است استاد است. نتانسته که امروی استاد مسلمان است نتانسته امروی شاگرد خود رابطی بسیار قوی و خوب داشته باشه او شاگردش پکر کنه که استاد من دوست من هست وقت مشکل خدا بگوید درد خدا بگوید جنجال خدا بگوید مشکل خدا بگوید نتانسته از او خاطر تند از امی بجرد که دستش داخل شود شاگرد ها از ترس از او گب زنه نمیتونه ولی باز دین هم نمیت گپارش هم قبول نمیکنند گپارش سر شتاسیر هم نمیکنند از خاطر استاد مسلمان باید بسیار نرم باشه ما در حدیث شریف میخوریم که یک کنیز آمد از می دوست پیغمبر سلام گفت پیغمبر سلام اون طرف میبود کشاد که بی پیغمبر خدا من تو کار دارم میگم کار دارم پیغمبر سلام کشید میگه با چیزی باشم من مشکل دارم من مشکل دارم, دارم. پیغمبر سلام وقت میداد برای رعایت خود برای مسلمان ها مدیر مسلمان مدیر مسلمان وقتی که کار میگم من یک دکتر سابسمش راستم مسلمان بود برای یک روز پرسیدم دکتر تو چرا در شب خانه گفت من در شب خانم کتل لونگی بیرم کتل ریش بیرم مسواک جسد گفت چرا تو گفتم گفت من, گفت من خاطر ازی که وقتی که دکتر هستم میرم یک مریض سرش جست کش میکنم برش دعوه ها میتوم خدمت میدارم ای که لونگی مردید ریش مردید مسواک مردید میگه ولی ای مسلمان است ای هن یک نو دعوت هست. یها یک نوع دعوت است که باید او را در دبال لباس خود او را دعوت کنم اما ای که مثلا خوب تو ظاهر ما آراسته باشد جمال الوجه و قبح النفس نفوسه که النفوسه همانندیل علی قبر مجوسی یک نفر که چهره بسیار خوب زیبا دارد لیکن از داخل بسیار تند است بد اخلاق است نفس خراب دارد مثل که میگه سر قبر مجوسی مجوسا سابق سر قبر خود باز یک داره دسمال بسیار زری لکس را سر قبرش گذاشتن ها در بیرون شو خوب دسمال زیرش و خل که جهنم است دار گفتن انسان الانسان بدخلاق این یکی قسم است از خاطر انسان خداوند و پیغمبر نمیگه که فعلی امه من الله لن ای پیغمبر خدا این نعمت خدا بود که تو نرم شدی عالم اسلام باید بسیار نرم باشه هر کس بتانه مشکل خدا برش بگه هر کس بدونه برایش جهد دل بکنه راز روزو خدا بگه و این مثل یک دکتر واره بر از اونها برای هر مرض هر مشکل اجتماعی اما اگر تون باشه ولا یک نفر از جوان مشکل داره می خایف بکنه که مثلا من مشکل در وصول دارم دمای بارک رمضان یک کس به شما می استاد ما بر شما به خاطر از تلفون کردم که من تا ولی می ترسم از 20 مولویزه بپرسم که امی دمای مبارک رمضان اگر انسان احترام چا روزه داره یا نیست می‌گویند بش، ما گفتم برای عزیز خیره وقتی که در خواب بودی ازو قلم برداشته شده این روزی تام نمشکنن خدا ولهم 10 وجه از خوق هستم خیر 10 وجه میخیسی لکرخس تا بکم وزیت میشد دین اسلام چیزی که اسلام میگه خدا پیغام صاب یسرو آسانی کنن بر مردم ولا تو عسرو سختی نکن سر مردم که دین بر مردم بیخی سخت بسازند بشیرون مردم بشارت بدین تو ان شاء الله جنتی هستی تو ان شاء الله خداوند عملت قبول میکنه و کلی بادی الی اصرفو که آیت شریف بسیار کم تفسیری میکنیم تشریح میکنیم باید این شریف یک سات در شما یک کانفرنس بگیرم که قلیب اعباد یلدین اصرفو حلا انفوسید خداوند مطالب مگه بگو بر برده های من که اصراح کردن زیاد روی کردن اشتباه کردن گناه کردن لاتقنت مر رحمت الله از رحمت خداوند مطالب شما نامید نشیند این الله رو زنوب جمعی خداوند تمام گناه ها رو میبشه هر وقتی که به طرف خداوند رجوع بکنی در وازه در وازه رحمت خداوند برات باز است ایننیکه تو گناه کردی کردی کردی کردی کردی و تو عملی نماز تا این عملی روزه نمیگیری تا عملی زکات نمیدی و خداوند دم لحظه مثل فرعون و ترخاخ نکرده، کرده خداوند بالای تو مهربان است وقت میتید امی که خداوند تو وقت داده در حالت گناه تو در خدا سر نکرده. ای از رحمت خداوند است از این خاطر از رحمت خداوند استفاده کن پس رجوع کن خداوند در انسان وقت میده تا چی وقت؟ تا که ازرایل علیه سلام من عیدی. تا چی وقت؟ تا که آفتاب از مغرب نبرمده. وقت داره پس وقتی که وقت خداوند بر ما داد، واقعا برای بنده های خداوند تشکر کنیم و برشون بگیم که خیر است که نماز خوانی، باعث شروع کنه ما صبح بخون. رحمت خداوند بسیار وسیع است. خیر است که دو سال روزه نگرفتید، باعث روزه بگیید. خیر است که فکر رانت نشید خراب بود. خیر است که کمونیست را بازی داد، تو را خیر است که سوسیالیست را بازی داد، تو رفتی دفعه پشت سوسیالیست. خیر است که مثلا تو راسیکولارست بازی داد، تو را حقیقتا خراب ساخت. دو دوزید توبه کو، باعث اندیشته جور کو. باعث اسلام پس به دربار چون رحمت خداوند بسیار بزرگ است و واسع است هر وقتی که دربار خداوند رجوع کنی خداوند رد نمیکن ببین پیغمبر سلام سخترین دشمن پامیلش کی بود وحشی بود کاکای کا کا پیغمبر سلام تو کشتن کرد که اتا قلبش هم پاره کرد کشید جیگر قلبش هم وقتی که آمد که مسلمان شود، پیغمبر سلام باشی که بزاره چشم باش اسلام تو قبول است به خاطر شخص خودش می نمیکنه ما مثلا چوری یک تمونس بعد مامه چوری یک بی دین بعد مامه به خاطر شخصش که او فلانی قوارعش یا قد بلند است یا پوی نشه فلانی به خاطر که فکر اندیشش بعد مامه اگر پس در راه خداوند بیاید و توبه بکنه و برای اسلام و برای عدالت الهی و برای انسانیت پس بگرده از از از قلبمون کده بر ما نزدیک‌تر است او را دوست می‌داشته باشیم چون مسلمان کسره به خاطر چیز چیزی ام بسیاری کساب خوب مسلمان است رابطه بسیار ضعیف با فامیل خود دارن اعضای فامیلش خاطر از او از دین متنفر هستند. ولی اگر تو عالم باشی و تو نمازخوان باشی و با این اخلاقی که تو داری مرتیر آدم مسلمان به سنت پیغمبره مراعات بکنه اگر امشیدش کلاشی میکرد این باید زرف اوابشش بیاره اگر خانمش دیک پختم میکرد ایتفل خود قرار بسازد وقتی بستانش پستانش میکرد بگوید که چیسته؟ یکی روز من مثلا سی چهار نتبه خانم بگردم من میتوکمیم و بدوز بدوز بدوز یادش رفته بود نه دختب نه دختب نه دختب بود خب من گرفتم من میتوکمیره خودم خوزنه گرفتم دختب میردم منتقه که پیشانی من توش گرفتم خانم من میفهمید برم اگه فالخیر از که خیر از که یک سر نتبهی غمبر را کردی چرا خار استی؟ خستین پایغه ما خودت مت می خوختن به خش که بده پیشونی پیغام ما است که خواست که تطبيق مگه پیشونی خدا خوز میگیره تو چرا تیر به تو به خدا راستی والا من اشتباه کرده اینال باید تو خانم مسلمان خواهر مسلمان برادر مسلمان بفهم که حیثیت تو در دیر مقدس اسلام بسیاری کس ما مسلمان هستم در ایمان خدای دقسش نیستم با اولادای خودیش دقسش نیستم تو که مسلمان هستی نفقه به اندازه توانایی سر تو فرض است خوب مسلمان هستی میتونی یک کلو گوشت بخری بر فامیلت نه ولی من نمیخانه یک ماس کچالو میبرم خود تو خونفقی فریسی در سر فامیلت بخیلی کردی میتونی سیب بر فامیلت ببری خونفقه وسط میرسه که یک کیلو سیب یک چار سیب پینجار پی بخری تو نمیخری نه, نه ولی من ما یک ماس کچالو میبرم چرا؟ من حالا مسلمان هستم ترک دنیا کردی تو ترک دین کردی ایخو ترک دنیا نیست این ترک, دی ترک دین است چون پیغمبر سلام میگه که نفقی فامیلتان به اندازه چی هستن به اندازه توانایی تست تو توانایی داری؟ برازه اما به باید وقتی که برای اولاد خود خریدی باید ببینی که او امسای ما هم و اله بیچاره میوانه داره باز اون وقت مسلمان کامل میشی که اگر یک چارک برای خود خریدی خرس نیم چارک برای امساید و امساید به او غریب و مسکین هم بگرم. اگر خود ار روز موتر میک میدوانی و محتر میری خب سر تو فرض است. دیدی که امسا... اگر امساید مریض است. مقرار خوب. مثل ما هستم خوب. اونم محترم هم مشستاد است. اونه شش نفر یک... یک مریض است. پشت قرار. و مریض هم نامخدا 80 کیلوس، است تا میکنن از, از وقتی باقید قرار شدید اینجا خب باز ما من شدم اسلام مکمل نشد بخاطر ازی که اینجا حکم خداوانده است من موتر من به خدمت از مریض قرار بودم تا من مسلمان حدیثی شوام اینجا هست که باز مردم وقتی گیم آوال اینی اسلام است بسیاری کساست یک روز یک گبقی یاد من نمیرم یکی از هم سنفیای ما بسیار با تقوی انسان بود که بسیار آسانیدی به ذکر خداوند و به احادت خداوند مشبور بود یک کسی از پیش از خفه بود من رفتم پیش ازمون اون نفر گفتمش بیاده؟ فهم که بیاده بفهم افتوم که امین شایخ جخب آدم هست حافظ قرآن هم هست. و بسیار دینتار هم هست. و امیشه در ذکر یاد خداوند هست نمیشه که تو از پیشش خفسته یک کشید گفت من در ارتباط ازی با خدا ایش اشکل ندارم من انتقادم سوش ارتباطش با من هست با خدا خوب ارتباط داره خوب با خدا نقل میکنن. خوب با خدا و هم ذکر میکنن. خوب قرآن میخوانه خوب چیل میکنه ارتباطش کتما خراب است. این رجال که شب جنگ میکنه، قرمقال میکنه. پس خدا خود گفته که هم ارتباط تا با خدا جور هم ارتباط تا با مخلوق خداو جور کن. از این خاطر آدم مسلمان باید ارتباطش با خداوند متعال بسیار قوی باشه و با مردم بسیار قوی باشه تا مردم از دیدن از او. بسیاری وقتها چون ما مسلمان ها اسلام درست تمسیل نکردیم، درست بر مردم نفامیلیم. یک نفر کافر میگه، میگه و خدا من مسلمان شدم. لیکن شکری خدا را کردم در چی شکر کردی؟ میگه خدا را شکر کردم که پیشتی یک مسلمان را ببینیم مسلمان شدم اگه مسلمان را بیدیم بایی بد اخلاقی که ندارن من هیچ اسلام قبول نمی کردم آیه این عیب نیست؟ بسیار است که مثلا من من یک امام هستم به خاطر من 5 نفر در مسجد در نماز نمیایم والا همین ملائصه ما بسیار برخلاف بسیار تند است یک مثلا فرسانش کنی که چبلخ ده کلیت میزنه از خاطر من نمیرم مسجد پس میشه من گناه, گناه شدم مالی یک نفر مسلمان دو آمدن در مسجد شدم من ریش صفیر هستم در مسجد میرمت بعضی از ریش عادت دارن که امروز که یک جوان ما یک وقت یک جوون بیچاره رو بسیار سختی آوردم که نماز بخونه ما تا نماز بخوانه سرلوش نماز میخوان سنفی ما بو خو خب گفتم خیره سالسه کله دا مسجد دارم دا از سفیه دجان از خت کو کافر او بی او گمراه سرلوش نماز میشن او به چا که از مسجد گريختم دیگه ایش نو امادم در حال کو برادر گل اگر نماز سرلوش نشه خیامی حاجی هایی که در اطراف کعبه دوادی که احرام بسته میکنن کلش سرلوش نماز میخورن نماز ازیا نشوده خایو کو واسو چرا سنوش نماز شال شد حتی اَهالی سمادک پیغمبرستم سنوشم نماز خوانند اما ما برشون گفتیم این قسم بویم اینکه برادر اگر کلاه بپوشی اگر لونگی بپوشی اگر لباس منظم بپوشی اصحاب کرام عطر میکردند ميدان میزدند لباس خوب می شودن. هر هرقدر خودت زیاتر با ادب در مقابل خداوند ایستاد شوی هرچقدر زیاتر میشه از 10 درصد گرفته تا 120 درصد اجز زیاتر میشه دیگه مشکل دیگه هست که با همسایه ها ارتباط خوب داشته باشن خب نه ارتباط با علم و معارف بسیاری وقت مسلمان باید در ارتباطی که با جامعه داره با علم و معرفت باید ارتباطش محکم شد با خدا اگر مسلمان ها از وسایل تکنولوژی و وسایل مسائل پیشرفته استفاده مثبت نیکردن آل دین مقدس اسلام کل مردم در اروپا و امریکا محتاج است کل عی در وجود ماست ما, ما به این مشکل است که آیا کامپیوتر کار کنیم کامپیوتر حلال است یا حرام اینترنت حلال است یا حرام تلویزیون حلال است یا حرام برادر گل گلاس آب است تلویزیون، اینترنت، کمپیوتر مثل چی بار است؟ گلاس آب است اگر در گلاس آب آب نوشیدی حلال است اگر در گلاس آب شراب نوشیدی حرام است پس او وسیله به شرخ ملامت نیست اگر در کمپیوتر تفسیر قرآن را ثبت کردی کتاب‌ها را ثبت کردی به ال فر معرفت با دانش کس کس تای مثلا یک نفر در تب بس سی دی های کتابای تی بیر خان در حقوق است کتابای قانونی خوان در شرایط است احادیث و تفاسیر بطور از یا استفاده کرد پس اینج کامپیوتر بهترین وسیله است اما اگر یک نفر در کامپیوترش کل پوسکارتای ایندی و کلش فیلموس و کلش خواندراس و کلش تصاویری غلط است این چه بر شرام میاد اگر در اینترنت رفت اونجا تقریبا 250 سایت عمل ما پیش خود که در... کامپیوتر خود دار... 250-260 سایت انترنتی است که محصرین پانزای سایست بر ما ترتیب کردن و راوردن سایت های اسلامی را اگر باز کنی از این استفاده بکنید. بهترین کار خوب است تفاصیل بسیار تفا... تفاصیل بسیار مهم مهمه که من در بازار یافت کردن نمیتونم وقتی که میرم در اینترنت این تفاصیل هست پس ازو استفاده کردی مثبت است استفاده من منفی کردی مثلا تلویزیون اگر درس تفسیر قرآن حدیث شریف این شود خوب است و اگر خواندن و ساز و رقص و نشر فیلم های ایندیو مردم حکوم راه کردن اینجا چه هست است پس ما باید از واسط اعلان مشکل ما چی است که غیر مسلمان ها از طریق این وسایل ضد اسلام کار میگیرند کارتون‌های پیغمبر صفع زمی تاریخ نشون میکنن، های غلط هستند، میترین تاریخ نشون میات فیلم حضرت و آدم و هوا رو اینا میلدن. پیش فروشگاه بری، فیلم حضرت و آدم و هوا جور شده و اونم مسیحیا ساختن. با مسلمانای ما تو میبینن این عقیدش بسیار عقیده‌ای از خ... ازو عقیده‌ای غلط میگیره. حضرت ابراهیم علیه السلام ها بسیار خراب نشان میده، حضرت نوح علیه خراب نشان میده، آدم یا رو بدون بیلباس نشان میده، اصفاده مسبت شود بسیاری مسلمان هست در لباس خود امی حدیث شریف است که ان الله جميل یحب الجمال حدیث شریف است ان الله جميل خداوند متعال زیباس یحب الجمال زیبار خوش دارن یک یعنی نفر رو ببینی که کالای خشر کونه خراب ازو که ده که خشره نباشه اون رو نمیپوشن چی گفته من مسلمان است خداوند خوش داره که آثار نعمت خدا در وجود یک انسان ببینه لکن مشکل لباس دیره است که اگر لباس خوب میپوشی ولی تو در لبا پوشیدن لباس خوبه کبر غرور کنید لباس اینجا لباس خراب میشه اگر از اون یک, انسان، یک انسان لباس خوب میپوشه اگر لباس اسلامی لونگی و لپرنتون و لباس خوب میپوشید بسیار خوب است اگر مثلا لباس دگه میپوشید لباس خوبتر مش کوشش لباس اسلامی رو با چینی بسیار زیبا و خوب و پاک بپوشید متاسفانه بعضی کساس والا متر که دنیا کرده مش لباس نمیپوشون یا بیکیر تو لباس میپوشه که عورتش معلوم میشه و خودت دین شد در, در لباس در خزا در در در صرف در پا. استفاده از وسایل از, از علم و معرفت عالم شما اگر علومو ببینید در سیاست اسلامی هر علم فرض کفایی است هر علم فرض کفایی است انجینری فرض کفایی است در کل شش جمله فرایست می اگر هیچ کس ده اونجا تربیت نشه در انجینری در حقوق در تب، در ژورنالیسم در کامپیوتر دیگه کار کلی گونگار میشن اما اگر ما یک تعداد مردم را تربیت کرده که شما برین تحصیل کنین و در این مجال کار بکنین باز از گردن دیگه مردم ساقط میشن پس اینه وارد اسلام ما شما بفهمین وقتی قایت قران یک فصل اهل الذکر این کنتم لا تعلمون شما برین از متخصصین پرساند بکنین ولی یک نفر که میگه میگونه زنوی درس نخونه هیچ مکتب نخونه هیچ باند نخوانن خب اگر خانمی اینمی نفر مریض شد و بابا دکتر زن نیاز نیاز پیدا کرد خب در اسلام نمیگه که باید به قاعده اسلامی است که انسان باید وقتی که خانمش مریض میشه اول پیش دکتر خانه ببریشت وقتی که دست نخونه خای دکتر خانم از کجا پیدا میشه پس ما باید بر از اونا زمینه درس خواندن اسلامی شد آماده بسازیم نه با سیستم سکولاری که باید دار مرد گد باشه و کلشان با دکترها آرایش های رنگارنگ بغی رنگ. ایده هم اسلام و ما هم اسلام ما این پیدا کی بیتی اون ڈاکٹر زن نداشته باشیم، معلم زن نداشته باشیم، حافظ قرآن زن نداشته باشیم، آل چیزان زن پیغمبران بی بی عایشه بی خفصه حفظشون حافظه قرآن بودن. و در جمله علمای حدیث بزرگترین عالم حدیث که ماشون نفر 33 یا 34 است، چند میز بی بی عایشه رضی الله تعالی که نفر چهارم از در بین بزرگترین عطا کبار صحابه وقتی که مشکلی پیدا می‌کردن، نمی‌آمدن پیش بی بی عایشه رضی الله تعالی و از پیش از او فتوا می‌خواستند بسیاری مسائل احکام و فصول می‌کردند. پس ما و شما باید دین مقدس اسلام را به شکل کامل و درست از او بشناسیم و درست تمثیل بکنیم و کسانی که در درسا اشتراک میکنند. ما و شما باید در فامیل ما آنقدر خدمتگار فامیل خود باشیم که دیگر فامیل ما احساس بکنن که در سایه اسلامی واقع اسلام یک دین خوب است ما و شما باید به با پدر و مادر خود نسبت به تمام اعضای فامیل خود وقت بذل و جناحت زل بسیار بشار خود خود, خود, خود بسازیم مادر و پدر بسیار احترام زیادشا نباکنیم تا که دیگران بفهمن که واقعا ما مسلمان هستیم ما را تارس با حتی بالش ماندن در پشت میمان بغیر بشت سلم وقتی که یک مسلمان برای میمان خود بالش در پشت میمانه در اینمی هم ثواب و عجد و صدقه هست پس باید بر مهمان خود هم احترام زیاد بکنیم تاکو بفام که با مسلمان استیم خداون مطال جل جلوهما شما توفیق عمل نیک نسیب بکنه الله اجالنا من الذین استمیون القول فایل قبیون احسن سبحان ربی کرد بلنزتیم ویسفون و سلام المرسلین و لله رب العالمين اللهم سلی علی محمد و علی محمد و علی محمد و سلید و سلات سلام خیر خلقه محمد و علی و سلید الحمد لله على دين الإسلام الإسلام حقه والكفو باطل الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا لنا وترحمنا لنكونن من الخاصين فروردكارا ما دليل القيدرس باعتداد رشتقيدار جوالا أطفال خط بزرق از مسلک های مختلف از چاه‌های مختلف شار کابل و حتی از بلانراج ما از بلوده امروز مهمان آمدند تشریف داران بعضی برادرای ما از مناطق بسیار دور دور اینجا آمدند به خاطر اینکه ای حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را شنیدیم که وقتی که چند نفر اهل در یک جای در یک خانه خانه خدا در یک جای در یک منزل جمع و اونجا یاد خداوند نمی‌کنند ذکر خداوند نمی‌کنند تعلیم علم اسلامی را مجنه ملائکه ها چرا اطراف ازین می پوشانند و رحمت خداوند نازل میشن پروردگارا تو رحمتت بالای من نازل کن پروردگارا به ما توفیق بیشتر نصیب کنی که در درس و در برنامه‌ای که به رضایت خودت دو اشتراک بکنیم خدایا ما را از جمله کسانی بگردانی که خادمای دینت هست خدایم ما را در روز قیامت در جمله خادمایت حشر بکنیم خادمای دینت حشر بکنی، در جمله چفراسی هایی ما را خدای حشر بکنیم خدایا اعمال که میکنیم ما را از ریا نگاه بکنیم خدایا برای ما توافیق بشتر نصیب بکنیم خدایا پدر و مادر ما را مخفیرت بکنیم خدایا کشور ما افغانستان بیچاره در طول چندین سال باورد تجاوزی بسیار دشمنان قرار گرفته و همیشه پلان های ساخته میشن. خدایا هر کسی که بر ضد اسلام و بر ضد کلمه اسلام و بر کلمه توحید و بر ضد و بر ضد پیغمبر و بر اصحاب کرام و بر ضد مسلمان ها و بر ضد کشور ما پلان میسازند خدایا یا اونا را هدایت بکنی و اگر قابل خدایت نیست خدایا اونا را هلاک کنی ای کسانی که آماده هستند که ما را بفروشا و نم شد کنیم مثل که شروسا و غلامای مصارب اصفاد کردیم خدای کشور ما را آزاد بسازی آزاد بگردانی و در جمعه کشورهای اسلامی خدایا بگردانی اله کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را و بیرق اسلام در کشور ما افراد شده داریم خدایا تمام مریضای اسلام شفا نصیبه کنیم خدای مردم ما مردم بیچاره و آجز استند. خدایا این مردم آجز بیچاره را تو از بارگاه خود رسکشانه صحبشانه آفیت و آرامششانه نصیبشان بگرده خدایا ما را هم تافیق تیگه در خدمت مردم خود و خود و ملت خود باشیم هر وعدگار نخستین روزی که ما عزیز دنیا میلیم به طرف آخرت و نخستین روز ملاقات خودت است در این روز زبان ما را به کلمه لا اله الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم